بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستان گران قدر و علاقه‌مندان عزیز برنامه عقیده در قرآن و سنت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم و برنامه دوازدهمی عقیده در قرآن و سنت که عنوانش توحید الوهیت اساس عقیده توحید است خدمتتان تقدیم میکنم توحید الوهیت اساس عقیده توحید دوستان عزیز اگر سر از این عنوان فکر بکنیم که چرا توحید الوهیت اساس عقیده توحید است ای به خاطر از هست است که ما وقت تقسیم کردیم عقیده را به توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسما و صفات اکثرا مشرکین و اکثرا کسانی که قبل از پیغمبرا بودن مثلا قبل از پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن اینا چون در اصل پیروان یک پیغمبری بودن ببینین آدم علیه السلام آمد بعد از او پیغمبر دیگه وقتی که نوح علیه سلام قبل از نوح علیه سلام کسانی که خود پیروه پیغمبر قبلی می دانستن، اینا به ای ایمان داشتن که خالق وجود داره. یعنی مشکل مشرکی نیست که اونا به توحید ربوبیت ایمان دارن. چی میگن به توحید ربوبیت ایمان دارن؟ از پیش شان وقتی که پرسان می شد اینا ایمان دارن به ای که خالق هست الله جل جلوه را مشناسن می که ای خالق ما هست رازق ما هست ولی مشکلشان خیده چی هست؟ مشکل مشرکین در یک نقطه اساسی هست و او ای که اونها در عبادت خالق و در قانون خالق شریک پیدا می کنن ای اساسی هست در عبادت خالق شریک پیدا می و در قانون خالق شریک پیدا میکنند چرا؟ بخاطر خاطر این که اگر امید تاریخ ما و شما ببینیم تمام هایی که آمده اند از زمان آدم علیه السلام تا زمان محمد صلی الله علیه وسلم تمامی از ای امتها یک عادت عجیب داشتن و اویی که اونا چون پیروی پیغمبر بودن با گذشت زمان پیروی از یک پیغمبر میکد پدر کلان موحد پدر مو اولاد وقتی که می آهسته آهسته اولادی از اینا سبب چی میشه سبب شرک میشدن پس اینو توحید الوهیت به خاطر چی بسیار مهم است چرا که در تمام امت ها وقتی که ببینن در اصل مردم به وجود خالق ایمان داشته اند ابو جهل به وجود خالق ایمان داشت ابو لهب به وجود خالق ایمان داشت لکن مشکلشان چی هست مشکل شرک عم که انسان از عقیده توحید میکشه این است که انسان موحده که پدر و پدر کلانش یکتا پرست بوده شیطان می خود از از در عبادت خالق و در قانون خالق کس شریک می سازه و این انسان فکر میکنه والا ما خالقم میشناسم ما پروردگارم میشناسم ما خالق بودانش حتی بسیار از عبادت ها ببین خوب است ما و شما چون عقیده خدا از قرآن میگیریم ببینید قرآن از برای ما امی اصل بیان میکنه که اول مشریکینی که با پیغمبر صلی علیه و سلم جنگیدن با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آیا امی مشریکین که با همرای رسول الله صلی اللہ علیه و سلم جنگیدن یا خالق مشناختن و یا نمشناختن؟ قرآن از مشان بر ما میگه که بله مشناختن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و لئین سألته من خلق السماوات والأرض اگر از مشرکین پرسان میکنی که و این سألت هم و این و اگر سوالشان بکنی ای پیغمبر سألت هم از امی مشرکین از امی ابو جهل از ابو اگر پرسان بکنی من خلق السماوات والارض آسمان زمین کی خلق کرده لا يقولون الله میگن که ای آسمان زمین کی خلق کرده میگن الله خلق کرده سوری زمر آیت سی و بسیار خوب سوره زمر آیت 38 هم یه آیت شریف است از این ما چی درس میگیریم؟ از تو درس میگیریم که مشرکین قریش الله جل جلوه را مشنختن و به هم باور داشتن که خالق آسمان ها و زمین الله جل, جل جلوه است. و ان هم من خلق السماوات والارد اگر از سوال کنی که آسمان ها و زمین کی خلق کرده لا نه ببینید دوستای نزیز. لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ لَام لام توقید است یعنی یقولو سا یقولو یقولو چه مانا؟ مانا یقولو ای است که می گوید یقولو نم لام لام توکید است یعنی حتما میگن و نون در آخرش کامده ایره نون توکید ثقیله میگن یعنی قرآن از شما بر ما میگه که اگر از مشرکین از ابو جهل ابو لهب امیه ابن خلف از هر کدام از اینا پرسان بکنی که خالق آسمان ها و زمین کی هست لا الله اینا حتما حتما حتما میگن که خالق الله هست چرا به خاطری که اینا اولاد پیغمبر بودن از اولاده های ابراهیم و اسماعیل بودن پیرو ابراهیم و اسماعیل بودن علیهم السلام، لاکن با گذشت زمان اینا نصف عقیده را الله جل جلوه را ببینن شیطان دو کار میکنه یک نفر اول میخواد که بخی کافر بسازه وقتی که کافر ساخته نتانست دید که در رک رق رگزی عقیده هست که خالق آسمان خالق زمین پیدا کننده کائنات الله جل جلوه است اینجا شیطان باز اسلوب دومی رو میگیره و او که که توحید ربوبیت الی من است الله خالق است رازق است روزی دهنده ده تو است لکن در توحید الوهیت که توحید عبادت است در عبادت الله و در قانون الله کسی دیگه شریک میکنه پس این انسان فکر میکنه من مسلمان هستم من معتقد هستم من اولادی پیغمبر هستم من به پیغمبر ایمان دارم من اولادی ابراهیم و اسماعیل اسم ها بودن و تاریخامیره ثابت میکنه لکن چرا امی قریشی که میگفت که من اولادی پیغمبر هستم باز مشکل چی بود که باز پیش بت سجده میکن؟ به خاطر ازی که مشکل از اینا در توحید ربوبیت نبود آیات قرآن بر ما که اینا الله رو خدا رو مشرک به یقیده داره که خالق آسمان زمین الله جل جل روز امی اون دوها و سکه ها رو اگر شما پرسان کنین میگن او پروالی کو هم عبادت کرته هی ما او پروالی رو عبادت میکنیم لیکن وقتی که باز در چی بین در توحید علوهیت که آمد باز در عبادت و در قانون باز مخلوق داخل میکنن گفتیم که مشرکین کافر با مشرک فرق دارن انسانم واحد باید از اردو عیب خود خلاص بکنه. خب یکی کافر کی از ما شکی سریق ده برنامه بعدی میگیم لکن آل گاب سرزی است که آیا مشرکین قریش با وجود خالق ایمان داشتن بله به این آیه قرآن چی میگه ولا انسالتهم من خلق السماوات والارض اگر از اینا سوال کنی که از خلق کننده آسمان زمین کی هست یا آیته شریف الله میکن که برای بله الله خالق کنم. یه گاچی. آیاتی شدی این در سوره زمر بود. آیت سی بود. بیم در دیگه آیت و بود. میام در سوره رو باراکه دیگه سوره آنکبوت. آیات شصتی یک اینجا با میکنه کرار میکنن. ولی انسال تهم و اگر یعنی مشرکین خالق آسمان و زمین الله است. بیی عقیده داشتن. آفتاب و محتاب کی مساخر ساخته مشرکین اینم باور داشتن. عقیده داشتن. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ولا ان سالتهم و اگر از این از سؤال بکنی که من خلق السماوات والارض کی خلق کرده آسمانها و زمینه و سخر الشمس و کی مسخر ساخته آفتاب را و سخر الشمس والقمر کی مسخر ساخته آفتاب و محتابه را لا یقولون الله میگه الله مسخر ساخته پس ببینین به خالق بودن الله جل جلو که خالق آسمونا هست و از زمین است و خالق آفتاب و محتاب است و او است که آفتاب و محتاب بر ما مسخر ساخته به هم مشرکین عقیده داشتند سه اوما دیگر رو ببینین عقیده از قرآن گرفتن خو. خوبی است که برای آدم های های رو میگه اول تره از ها و کسافات عقیده خبر میکنه اول تره تخلیه باید خود کنی از ای چیزها از ای اوهام اگر عقیدهر از قرآن نگیری را نفهمی در عین مرض انسان مبتلا میشه در آیت شریف چی میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن سألتهم و اگر از اینا سؤال میکردی که من نزل من السما ماا من نزل من السماع ما از آسمان آب کی نازل کرده ف احیی به الارض من بعد موتها باز امی زمینی که مرده بود خشک بود چیز نداشت پس دوباره ایره زنده کرد ف احیی به الارض بعد موتها لا یقولون الله اینها میگن حتما میگن که کی الله ایره خلق کرده سوری ان کبود آیت شست خالق آسمان زمین کیس مشرکین میفتن الله هست از اسمان کیس الله هست. خالق زمین کیس الله هست. خالق افتاب کیست؟ الله هست. خالق محتاب کیست؟ الله هست. کی باران نازل میکنه از عبرها تا که زمین بعد از مردگی زنده سازه؟ این هم الله هست. یا سبحان الله. ای کار هم میکردن بله این را هم بیکردن. خیچه را مخالفت با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کردن؟ الان اینجا برات سوال پیدا میشه. امروز اگر برای یک مسلمان بگویی که برادر یک کسی هست عقیده داره که خالق آسمان الله هست خالق زمین الله هست خالق آفتاب محتاب الله هست آفتاب و محتاب برای انسان او را الله مسخر ساخته و برش بگویی که برادر عزیز اینمی ابرها را هم باران که نازل میکنه به این هم عقیده داره همین انسان که از آسمان توسط ابرها باران نازل میکنه تا که زمین, زمین زنده میکنه بعد از این مردنش ای هم الله این نفر برد میگه میگه برادر از این زمین نفر مسلمان است عزیکت کجا میگه صدفیصد مسلمان است این مسلمان است لیکن امی صفات صفات ابو جهل است صفات ابو بود چرا؟ مشکل ازایی بود که کل بر ربوبیت خالق که الله خالق است رازق است آسمان خلق کرده زمین خلق کرده آفتاب خلق کرده محتاب خلق کرده باران نازل میکنه زمین بر ما کل شب عقیده داشتن خی مشکلش اون چی بود چرا خی وقتی که یک نفر هم تعقیده داشته مقابل پیغمبر قرار بگیره به خاطر ازی که مشکل ازایی بود که یا میگفت که خالق همه به امرای خالق بوت ها است یعنی هم عبادت خالق هم میکنیم او خالق ماست و هم به بطه ها و به قبر و به مرده و به ای هم میریم و از اینا هم کمک میخوایم از جنها هم کمک میخوایم از ملکه هم کمک میخواییم پس اینا در ربوبیت عقیده داشتن وقتی که الوهیت آمد دعی ای اینا شرکار داردن در نماز چی می کردن آیا مشرکی نماز میخوانند، بله نماز میخوانند. چی می قسم نماز میخوانند؟ چون اونا میگفتن ما, ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم نمیگفتن که ما کافر هستیم و بیدین هستیم پس نماز میخوانند، بله چه قسم نماز میخوندن؟ نمازی که دیگه مسلمان هم میخوان. نه مشر... شیطان در نماز مشرک هم چکچک چک و اشپلاق و دول و تمبور داخل میکن در نماز و در عبادتش هم ایره داخل میکنه. آیت قرآن چی میگه؟ و ما کان صلاتهم عند البيت و ما کان صلاتهم و نبود نمازشان. نماز کی؟ نماز مشرکین عند البيت در پیش بیت الله شریف نماز میخاندن. برادر آیت قرآن است. آیت باز کنین. سوره انفال آیت سی و ای که من براتان همیشه میگم تمام علما برتان میگن که برادر عزیز قرآن کتاب عقیده هست اگر عقیده از قرآن نگیری حتما شیطان در کفر یا در شرک یا در نفاق یا در بدعت یا در خرافات ترجی رجی میگنه؟ داخل میگنه فقط؟ اگر عقیده بغیر از قرآن از چیز دیگه گرفتی اما اگر آمدی آیات قرآن خاندی و قرآن دا او شفا و رحمت است چرا شفا و رحمت است آبی که تو به او نیاز داری عقیده ای که به او نیاز داری که بدون از زندگی کرده نمیتونی ای عقیده صاف پاک دا کجا است قرآن است الحمدلله آله شما ببینن. و انس سألتهم کل ازیرا چرا قرآن بر ما میگه اداقل یک مسلمان برادرای عزیز الله جل جلو میگه افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها چرا در قرآن تدبر نمیکنن؟ آیا دلهاییشان قلف است تدبر بوکنیم که چرا در قرآآن عظیموشان ای آیات شریف بر ما مثلا گفته میشه ی اي آیات بر ازی گفته میشه به خاطر ازی که انسان مسلمان انسان یکتا پرست انسان موحد هر آیت میخونه و ازی آیات درس میگیره و ما کان صلاتهم عند البيت و نبود نمازی از اینا در نزد بیت الله شریف الا مکا و تصدیه مگر مکا و تصدیه بود گفتیم که ك... قرآن عظیم شان کتاب عقیده هست ما شما مؤمنان هستیم که به قرآن ایمان داریم به با قرآن باور داریم و عقیده خدا از قرآن میگیریم قرآن عظیم شان برای ما چی میگه قرآن عظیم شان میگه که مشرکین با وجود خالق یکی خالق آسمان ها و زمین و آفتاب و محتاب از به ای کلش عقیده داشتن و در پالوی ازی که به این چیزا عقیده داشتن نماز هم میخوندن ولی نماز و عبادتشان با نماز و عبادت موحدین فرق داشت در نماز موحدین خوشو بود اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اول سپاری اجدام باز بکنین قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله جل جلاله که فلاح و کامیابی نصیب مؤمنان شد الذین او مؤمنان که قد افلحا به کامیاب شدن المؤمنون مؤمنان الذين او مؤمنان که هم ایشان في صلاتهم در نماز خود خاشعون خوشو دارند چه قسم خوشو دارن؟ صحابه کرام قبل از نازل شدن از این آیت به طرف آسمان یکان مرتبه میگ ما می میکردیم وقتی که ای آیت شریف نازل شد ما حتی سر خود بلندم نمی نمیکردیم طرف آسمان هم نمی نمیکردیم پس مسلمان در نماز خود طرف, شر... ش... طرف راست هم سهل نمیکنه چپ هم نمیکنه بالا هم نمیکنه فقط به مطرف جای سجده خود رو رو میکنه و با بسیار خوشو در مقابل ذات جلال استاد میشن والدین هم عن لغوی موردون این نفرایی که این قسم نماز میخوان از لغویات هم اعراز میکنن از رقص و چکچک و دول و سرنی و اشپلاق و ایگپا دوری به خاطر ازی که وقتی در مقابل رب جلال استاد هستی چه قسم باید عبادت بکنیم در مقابل رب زلجلال چه قسم استاد شویم با بسیار محبت خوف و امید یس yes, عبادت در عبادت محبت الله در قلبت است. درش عبادت می ترس از الله در قلبت است. از الله میترسی. که اگر جنایت ظلم کردی. مخالفت امر کردی، جزایت می و عدالت الهی می پس از الله با محبتی که داره می هم. و سومین نقطه در عبادت الله مؤمنین چی دارن؟ امید دارن. و یرجون رحمت، رحمتش هم رجا دارن امید و یرجون رحمت هم. امید رحمت دارن ایناله، خیلی کسایی که مشرک بودن و چی کردن؟ با وجود که اقیده در مسائل آسمان و زمین و در خالق داشتن در عبادت هم میکردن، لیکن عبادت، عبادت موحیدین واره نمیکردن چرا؟ گفتیم که در نمازشان چی بود؟ مکا و تصدیه بود از کجا باوردین ای را؟ ای را از کجا پیدا کردیم که در نماز از قرآن خبر میتاز سوری انفال آیه سی و پنج و ما کن صلاتهم و نبود نمازشان عند البیتی در پیش بیت الله شریف الا مگر مکا و تصدیه مکا علما مفسرین میه که این انگشت با این انگشت دیگه یک جای میکردن این قسم دو انگشتن دو همگشت رو یک جا بیکرم و در دا دان خود میموندن اشپلاق میزدن ایره چی وقت میکردن؟ در سر نماز آن شریف میگه: و ما که آن صلاحات همین نمازشان نبود در نزد بیت الله شریف مگر مکا اشپلاق کردن و تصدیه و چک چک کردن الله جل جلو برشان چی میگه؟ فذوق العذاب بی ما کنتم تکفرون پس شما کسی که در نمازهایتان چکچک چک و اشبلاق میکنین و بی ادبی میکنین و میرقصین و دول میزدین فضوق العذاب شما عذابه بچشین چرا به خاطر که شما کفران نعمت کردین الله برات میگه که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن کی هست که در نماز خود خوشو داشته باشه با محبت و با ترس و با امید نماز میخونه و بسیار در مقابل ازو با احترام استاد میشه و شما در مقابل الله به احترام میکنید در پیش خانه بیت الله, الله شریف میرفتن و درونجه چکچک و اشپلاق میکردن فزو قلع ما بما کندم تکفرون پس بچرشین ازو و سبب ازی شما کافر شدین با یه حرکاتتان با بیعدبی در مقابل خالد اینال مشرکین ایره هم میکردن پس مشرک خالق مشناخ مشرک نماز میخوند مشتره که حج میکرد این از کجا گرفتیم؟ لکن میگه وقتی که در حج تواف میکردن یعنی حج که مسلمان و شما کردیم شاید این قسم نمیکردن تواف میکردن ای که به چه شکل اینا تواف میکردن و چه قسم میکردن اینجا حضرت علامه ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر میگه که سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد ای آیت شریفی که و کان صلاتهم همین دل بیت پرسان کرد که یا نمازشان در پیش بیت الله شریفشی بود ایشان فرمودن قرائشی ها با کعبه با شکل برحنه تواف می نمودند قرائشی ها به کعبه به شکل برهنه تواف می نمودن اشپلاق و چکچک چک می نمودن تفسیر ابن کثیر جلد چارم صفحه 51. جلد چارم صفحه 51. یک امی آیت شریفه شما اگر امی آیت شریفه لطفا بگیرین سوره انفال آیت سی و پنجم از بگیرین و در تفسیر ابن کثیر ایره پیدا بکنین و ببینین که حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنهو و حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سوال کرد که این صحابی جل القدر حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مفسر قرآن بود مفسر قران بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش دعا کرده بود بناهن از ف... این طابعی حضرت سعید بن جبیر یک تابعی مبارک است این پرسان میکنه هست این صحابی مبارک مفسر قرآن هست شیخ المفسرین در بین صحابه کرام ایمه هست از ای پرسان میکنه که و ما کان صلاتهم این دل بیتی امی چی مانا باز او مبارک برش میگه که قراجی ها در اطراف کعبه تواف میکردن به رحنه تواف میکردن شیطان بر زنایش گفته بود که دل تو پاک است، تجابا چی بکنی؟ سر لوچ برو، قول برو، هم گفته بود بیخی برهره برو و اشپلاق میز کردن و چکچک چک, چک میکردن. اینال دوستان عزیز ای هست مشکل مشرکین انسان موحد وقتی که خالق شناخت، عبادت مطابق حکم خالق میکنه و یکی از علما میگه الله ذاتی است که عبادت از او فامیده نمیشد مگر ای که پیغمبرا و کتابهایش او رو بیان کرده باشد پس کدام که عبادت درست است از این خاطر مشکل اساسی مشرکین در توحید الوهیت است که انشاءاللہ باقی مانده ای درست در برنامه بعدی خدمتتان تقدیم خواهیم کرد تا برنامه بعدی شما را برابی زلجلال مسباریم و السلام علیکم و رحمت الله و